فصل چهار رم. وقتی به خیابان یودن بازگشتم هوا تاریک و هنوز روز دوشنبه بود من سری میراندم اما ساعت هفت بود و به این فکر نکرده بودم که خیابان نودل بریته از ساعت هفت شب برای ماشین ها بسته می شود سردرگم این خیابان را دور زدم از میان خیابان های تاریک و خراب بار دیگر جلوی کلیسا سر در آوردم جایی که هدویک را آخرین بار دیده بودم یادم افتاد که هم هدویک و هم اولا هر دو به من گفته بودند برو دوباره از جلوی مغازه لوازم تحریر فروشی و تابوت فروشی در خیابان کرب ماخر گذشتم وقتی دیدم که در کافه چراخ روشن نیست ترسیدم همین که خواستم از روبروی آن وارد خیابان یودن شوم در آخرین لحظه متوجه پلوور سبز رنگ هدویک شدم که جلوی در ورودی کافه ایستاده بود. چنان پا پاروی ترمز گذاشتم که ماشین از مسیر اصلی منحرف شد و روی تکه های باری باریک گل سرخ خورد. آن قسمت از خیابان که کند شده و گودال دوباره پار شده بود. و دست چپم به دستگیری در اصابت کرد. هر دو دستم درد می کردند. وقتی از ماشین پیاده شدم و در تاریکی به سوی هدویک رفتم، او درست مثل دخترهایی که تو خیابان می‌ایستادند و بعضی وقتا که شبها از خیابان تاریکی میگذشتم سر حرف را با من باز میکردند آنجا ایستاده بود. بدون پالتو، با پلوور سبز روشن، صورت سفیدش زیر گیسوان مشکیش قرار داشت و سفیدتر از آن، خیلی سفیدتر، گردن باریکش بود که مانند برش برگی بود و دهانش به نظر می رسید که با آبرنگ مشکی رنگ شده باشد. از جایش تکان نخورد هیچ چیز نگفت مرا نگاه کرد و من بدون اینکه چیزی بگویم دستش را گرفتم و با خود به طرف ماشین کشیدم مردم جمع شده بودند چون صدای ترمز من مثل صدای شیپور در آن خیابان ساکت تنین انداز شده بود و من به سرعت در را باز کردم تقریبا هدویک را به داخل آن هول دادم سری به طرف دیگر ماشین رفتم و با عجله از آنجا دور شدم تازه یک دقیقه بعد وقتی مدتی بود به پشت ایستگاه راه آهن رسیده بودیم فرصت پیدا کردم به اون نگاهی بیاندازم رنگش به شدت پریده بود و بالاتنه اش را مثل مجسمه راست نگاه داشته بود زیر یک تیر چراغ برق رفتم و توقف کردم خیابان تاریکی بود و گردی نور چراغ به یک پارک میافتاد و یک قسمت از چمنها را به شکل دایره روشن می کرد. اطراف ساکت بود هدری گفت مردی سر صحبت را با من باز کرد یک مرد من ترسیدم چون او هنوز هم مثل یک مجسمه صاف نگاه می کرد او می خواست را با خودش ببرد یا با من بیاید و خیلی مهربان به نظر می رسید او یک کیف مخصوص پرونده زیر بغل داشته و دندانهایش کمی به خاطر دود سیگار به سردی میزد. پیر بود. مطمئناً 35 سال داشت، اما مهربان بود. گفتم: "هیتویگ." اما او به من نگاه نمی کرد. وقتی بازویش را گرفتم، سرش را برگرداند و به آرامی گفت: «مرا به خانه برسان." من شدیداً تحت تأثیر قرار گرفتم که او در جمله‌اش مرا تو خطاب کرد. گفتم من تو را به خانه میبرم ای خدا او گفت نه یک دسته صبر کن و به من نگاهی انداخت به دقت مرا نگاه کرد به همان دقتی که من به او نگاه کرده بودم اما الان می ترسیدم توی چشمانش نگاه کنم شروع به عرق ریختن کردم و درد را در هر دو دستم احساس میکردم و این روز این دوشنبه به نظرم غیر قابل تحمل می رسید خیلی طولانی برای یک روز و دانستم که نباید از اتاقش بیرون می آمدم. من سرزمینی را کشف کرده بودم اما هنوز نشانه خودم را در آن سرزمین به جای نگذاشته بودم سرزمین زیبایی بود اما همچنان قریب به اندازه بیگانگیش زیبا بود آهسته گفت ای خدا، نمی دانید چقدر خوشحالم که تو از او مهربانتر هستی خیلی مهربانتر مرد اصلا اصلاً آنطور که به نظر می رسید مهربان نبود رأس ساعت هفت مرا بیرون کرد، نباید اینقدر دیر می کردی؟ او گفت، حالا راه بیفت آهسته می رندم و خیابانهای تاریکی که من از آنها عبور می کردم به نظرم مثل راه های خیلی باریک باطلاقی می رسیدند راهی که ممکن بود هر آن ماشین در آن فرو برود با احتیاط می گویی مواد منفجره با خودم هم میکنم صدایش را می شنیدم دستش را روی بازویم حس می کردم و دقیقا احساس کسی را داشتم که امتحان بزرگ روز رستاخیز را با موفقیت پشت سر گذاشته است او گفت چیزی نمانده بود با او بروم نمی دانم که چه مدت باید ثبت می کرد. اما خیلی طاقت نیاورد، میخواست با من ازدواج کند، میخواست طلاق بگیرد، بچه داشت و مهربان بود، اما وقتی نور چراخهای ماشین تا خیابان را روشن کردند، فرار کرد. فقط یک دقیقه کنار من ایستاد و با عجله مثل آدم هایی که خیلی وقت ندارند پش پش او وقت کم داشت، یک دقیقه. و در عرض این یک دقیقه من یک عمر زندگی را در کنارش احساس کردم. خودم را در آغوشش میانداختم، دوباره رهایش می ساختم. بچه های او از آن من میشدند، جورابهایش را وصله میکردم. کیف ادارش را که شبها خسته از سر کار برمیگشت از دستش میگرفتم. بعد از آنکه در خانه را پشت سرش میبست، می, می بوسیدمش. وقتی دندان مصنوعی جدید می خرید، با او در خوشحالیش شریک می شدم. وقتی حقوقش زیاد میشد با هم جشن کوچکی می گرفتیم میخریدیم و با هم به سینما میرفتیم و او برایم یک کلاه نو می خرید کلاهی به سرخی مربای گیلاس او با من آن را انجام داد که تو قصدش دی انجام دهی و من از ناز و نوازش های خوشم میامد. او را می دیدم که کتو شلوارش را عوض می کند وقتی کتو شلوار نو می گرفت کتو شلوار روزهای یکشنبه تبدیل به و شلوار معمولی می شد تازه باز هم تن پیدا می کرد و شلوار جدیدی می و بچه ها بسرک می شدند کلاهایی به قرمزی مربای گیلاس به سرشان می گذاشتند و من آن چیزی را که برای من ممنوع بود برای آنها ممنوع می اینکه در باران قدم بزنند و گردش کنند این را به همان دلیل که برای خودم ممنوع شده بود قد غم می کردم. چون لباس ها زیر باران زودتر از بین می روند. من بیوه او شدم و از شرکتش تسلیت نام دریافت کردم. او در یک کارخانه شکلات به عنوان حسابدار مشغول به کار بود و شبها برایم بر می کرد که چقدر شرکت آنها بابت شکلات مغزدار صبحاف سود آیدش می شود. خیلی سود می برد. او از من میخواست که در این بار حرفی نزنم اما من سکوت نمیکردم هما صبح روز بعد در مغازه شیرفروشی به همه میگفتم که شرکتشان چقدر از فروش شکلات مغز دار یوسپاف سود میبرد. فقط کافی بود یکی یا دو دقیقه بیشتر طاقت بیاورد، اما نتوانه صبر کند. وقتی ماشین تو تو خیابان پیچید، او فرار کرد، مثل یک خرگوش میدوید. او به من میگفت: من فرد بی سبادی نیستم، دوشیزه خانم. من آهسته تر می میراندم، چون درد دست چپم بیشتر شده بود. و دست راستم داشت کمی باد میکرد. وارد خیابان یودن شدم. چنان آهسته حرکت کرد میکردم که گویی روی پلی هستم که هر لحظه ممکن است فرو بریزد. هدویک پرسید. اینجا چه میخواهی؟ میخواهی اینجا بیستی؟ من با ترس به او نگاه کردم. همانطور که آن مرد نگاهش کرده بود. او گفت. نمیتوانی به اتاق من برویم. کامنز آنجا منتظر من است. دیدم که چراغ اتاقم روشن است و ماشینش جلوی در خانه است. آهسته از جلوی در خانه رد شدم. از این در قهوه‌ای رنگ که اگر نگاتیو آن از اتاق تاریک خانه می می‌توانستم آن را دوباره تشخیص دهم. تعداد زیادی در خانه. به شکل کمان. تعداد خیلی زیادی در که مثل یک سری تمرهای جدید که تازه از چابخانه دولتی درآمده باشند یک ماشین قرمز شرابی جلوی در خانه پارک شده بود نگاهی پرس شامیز به هدویک انداختم او گفت: هیلده کامنز یکی از بستگان پدرم است برو نبش خیابان بپیچ از پنجره اتاقم دیدم که در خیابان فرعی بین دو ساختمان جای خالی است مسط تیره یا خیابان فری را با خط باریک گلروس قهوهی رنگ در وسطش دیدم و تو را که مرده روی آن قرار داشتی زیرا میترسیدم که تو دیگر هرگز نیایی دور زدم و وارد خیابان کربماخر ماخر شدم اما همچنان آهسته و به نظرم می رسید که دیگر هرگز نمی توانم به سرعت حرکت کنم چند خانه پشت نانوایی، جایی خالی بین دو ساختمان بود و ما به نمای پشت خانهی که هدریک در آن زندگی میکرد نگاه کردیم. درختان قد کشیده یک قسمت را پوشانده بودند. اما یک ردیف از پنجره ها را روی خط عمودی میتوانستیم ببینیم. در طبقه همکف پنجره تاریک بود. در طبقه اول چراغ روشن بود و در طبقه دوم هم چراغ سوخت. او گفت، اتاق من. اگر پنجره را باز میکرد میتوانستیم شبه او را ببینیم و مثل یک آدم نابینا نابی به این دام میافتادی و او ما را به خانه خودش میکشند. یک آپارتمان بسیار عالی به زیبایی آپارتمانهایی که بر حسب تصادف زیبا هستند اما تو در همان نظر اول میدیدی که این تصادف فقط خیلی ماهرانه ساخته شده است و تو همان احساسی را داشتی که از سینما خارج می یا کاملا تحت تاثیر فیلم جذابی قرار گرفتی و یک نفر هنگام بیرون رفتن از سینما جلوی رخکن بگوید فیلم بدی نبود فقط موزیک متن آن بود او آنجا ایستاده نگاهم را از هدویک برگرفتم و دوباره به اتاقش چشم دوختم و سایه زنی را دیدم که کلاه نکتیزی بر سر داشت اگرچه نمیتوانستم چشمانش را ببینم خیال میکردم که او به ماشین ما نگاه میکند با چشمانی که ی آن زنهایی است که میخواهند به زندگی دیگران نظم ببخشند هدویک گفت راه بیفت به سمت خانه حرکت کن از این می ترسم که او ما را این پایین با هم ببیند و بشناسد. و اگر به دستش بیفتیم آن وقت تمام شب را باید در خانه ای سپری کنیم و چای عالی و خوش طعم بنوشیم. این امید رو هم نداریم که بچههایش از خواب بیدار بشوند و مادرشان را مشغول کنند. چون بچه هایش مطابق قانون و مقررات تربیت شدهاند و از ساعت هفت شب تا هفت صبح یک سره می حرکت کن. تازه شوهرش هم خانه نیست. او به مسافرت رفته است. یک جایی در قبال حق و زحمه های مردم را تزئین می کند. آپارتمان هایی که گویی بر حسب تصادف قشنگ حساب درآمدهاند. حرکت کن. من راه افتادم. از خیابان کرب ماخر، نت ماخر گذشته و آهست خیابان نودل برایتر را قطع کردم. ناخواسته میدان رونتگن را دور زدم. نگاهی به داخل ویترین مغازه گوشت فروشی که هنوز هم هرم گوشت سر جایش بود انداختم و دوباره به اولا فکر کردم و سالهایی که با او بودم. این سالها مثل پیراهنی که آب رفته باشد برایم تنگ شده بودند. اما ساعات از ظهر به این طرف از وقتی هدویگ وارد شهر شده است برایم ساعات دیگری بودند. خسته بودم و چشمانم درد می کردن. و وقتی که از خیابان طولانی و مستقیم مونیخ به طرف پایی می راندم، تقریبا تنها کسی بودم که از سمت راست ترکت می کرد و از سمت چپ سایر ماشین یکدیگر را تحت فشار می گذاشتند و از هم سبقت می گرفتند. بوغ می زدند و فریاد زنان فاتحان از کنار یک دیگر عبور می کردند. در استودیو مثل این که مسابقه بکس یا دوچرخ سواری برگزار می شد. دائمان نور چراغ ماشین هایی که از روبرو رو می آمدند توی چشمانم میافتد و شدیداً موجب ناراحتیم هم می شد. طوری چشمانم درد می که بر اثر آن گاه آه از نهادم بلند می شود. این چراغها درست مثل نیزه هایی بودند که در یک صفه طولانی و بیپایان آرایش داده شده بودند و با پیکان تیز خود تا جرفای وجودم را سوراخ می کردند. گویی چراغ مرا تازیانه می زنند. و به یاد سال های افتادم که در آن وقتی هر روز صبح از خواب برمیخواستم از نور متنفر بودم. دو سال تمام شور و شوق کار مرا جذب می کرد. و من هر روز صبح ساعت پنج و نیم از خواب بلند می شدم. یک فنجان چای تلخ میخوردم. فرمول ها را خرخانی میکردم یا پایین در کارگاه کوچکم چیزی سرهم می کردم. میزدم می زدم و مونتاژ میکردم. راهی را امتحان میکردم که اکثرا بار شبکه برق خانه را چنان زیاد می‌کرد که سیمها فیوز می‌سوزاندند و من از ساختمان‌های بالا صدای اعتراض آمیز مردم را به خاطر آب قهوه می‌شنیدم ساعت شمات دار کنار من روی میز تحریر و یا روی نیمکت کارگاه قرار داشت وقتی زنگ میزد و ساعت هشت را نشان می‌داد بالا می‌رفتم دوش می‌گرفتم به آشپزخانه صاحبخانه می‌رفتم تا صبحانه‌ام را بیاورم قبل از آنکه اکثر مردم شروع به خوردن صبحانه کنند، من دو ساعت و نیم کار کرده بودم. از این دو ساعت و نیم متنفر بودم. بعضی وقتا هم آن را دوست داشتم. اما در هر صورت، هرگز پیش نمی آمد که آن را انجام ندهم. اما اکثران وقتی در اتاق روشنم صبحانه می این تازیانه نور را می کردم، همانطور که حالا آن را احساس می کنم. خیابان مونیخ طولانی بود. و همین که استادیوم را پشت سر گذاشتم خوشحال شدم هدویگ مکس کرد او فقط یک لحظه وقتی توقف کردیم تعمل کرد در ماشین را برایش باز نگاه داشتم دستش را گرفتم و تلو تلو خورن که رویش از پله ها بالا رفتم ساعت هفت و نیم بود و به نظرم می رسید که ابدیت باید یک روز دوشنبه باشد از وقتی خانه را ترک کرده بودم هنوز یازده ساعت هم نگذشته بود. به راه را گوش دادم، صدای بچه های صاحب خانم را میشنیدم که سرشان می خندیدند. حالا فهمیدم که چرا پاهایم موقعی بالا رفتن از پله ها سنگی نیمی کردند. تکه های گل به کف کفش هایم چسبیده بودند. کفش های هدویک هم آلوده به گل گودال کند شده ی وسط خیابان کرب ماخر شده بود. وقتی وارد اتاق من می این به هدویک گفتم، من چراغ را روشن نمی کنم. چشمایم خیلی درد می کنند. گفت نه چراغ را روشن نکن. من در را پشت سر او بستم. نور کمرنگی از پنجره های ساختمان رو به رو به درون اتاقم هم می و من می توانستم روی میز تحریر یادداشت هایی را ببینم که خانم بروتیگ روی آنها تلفن هایی که به من شده بود را یادداشت کرده بود. روی یادداشت سنگی گذاشته بود، قلب سنگ را برداشتم و مثل اصللحی مخصوص پرتاب در دستم سبک و سنگین کردم. پنجره را باز کرده و آن را توی باخچه جلوی خانه پرتاب کردم. شنیدم که سنگ چگونه در تاریکی روی چمن قلتید و به سطله اشغه ثحبت کرد. پنجره را باز گذاشتم. در تاریکی برگ یادداشت را شمردم هفته بودند و من آنها را پاره کرده و سرنات کاغذ را داخل سبد کاغذ باطل ریختم هدویگ از پشت سرم پرسید صابون داری میخوام دستویم را بشویم آب اتاق من کاملا کسیف آجری رنگ بود گفتم صابون سمت چپ روی قفسه زیری است یک سیگار را از بسته درآوردم و روشن کردم وقتی رویم را برگرداندم تا کبریت را فوت کنم و داخل زیر سیگاری بیاندازم صورت هدویک را در آینه دیدم دهانش درست مثل دهانی بود که روی دسته کاغذهای های چاپ شده بود و من با آنها تیخ های ریش دراشی را خشک می کردم آب میکرد می کرد و او دستهایش را می شست می شنیدم که او چگونه دستهایش را به هم می مالید. منتظر چیزی بودم و وقتی آرام در اتاقم کوبیده شد دانستم که منتظر چه هستم سایب بود و من با عجله به سمت در رفتم فقط لایه در را باز کردم خود را از لایه در بیرون کشیدم و به طرفش توی راه رو رفتم او در حال باز کردن پیشبندش بود آن را تا کرد و اکنون پس از چهار سال که پیش او زندگی می کردم دیدم که تا اندازه شبیه خانم ویتسل است فقط یک کمی اما او در هر حال به وی شباهت داشت حالا همچنین برای اولین بار دیدم که او چند سال باید داشته باشد مطمئنا چهل سال شاید هم بیشتر سیگاری بر لب داشت پیشبندش را تکان میداد که ببیند آیا درون آن کبریت هست یا نه کبریت نداشت من هم بیهوده جیبهایم را تکان می دادم کبریتم را توی اتاق گذاشته بودم سیگار روشنم را به او دادم سیگارش را به آن چسباند پاکی امیغ زد و سیگارم را پست داد درست مثل مردها سیگار میکشید و با حالتی بدیهی دود را امیغم فرو میداد. گفت، عجب روزی بود، این اواخر اصلا تلفن ها را یاد نکردم. به نظرم بیهوده می رسید چون شما سرکلتان پیدا نبود. چرا از زن بیچاره در خیابان کوربه را فراموش کردید؟ شانههایم را بالا انداختم و در نظرم چشم های خاکستریش کمی کشیده رسیدند. به گل فکر کردید؟ گفتم نه گل را فراموش کردم او سکوت کرد با دست گی سیگارش را در دستش چرخاند و به دیوار تکیه داد و من فهمیدم که برایش سخت است که حرف دلش را بر زبان بیاورد دلم میخواست به او کمک کنم ولی واجه مناسب را پیدا نکردم او با دست چپ پیشانیش را مالید و گفت غذای تو در آشپزخانه است؟ اما غذای من همیشه در آشپزخانه است. و گفتم مرسی. رویم را برگرداندم و آهسته رو به نخشای کاغذ دیواری کردم و گفتم حرف دلتون را بزنید. گفت نمی توانم بگویم خوشم نمی آید و عذاب میکشم از اینکه باید بگویم که دوست ندارم. خوشم نمی آید که این دختر شب را پیش شما سپری کند. پرسیدم او را دیدید. گفت نه، اما صدای هر دوی شما را شنیدم. خیلی ساکت بود. حالا یک دفعه همه چیز دستگیرم شد. پیش شما خواهد ماند؟ گفتم، بله، او، او همسر من است. کجا بغد یکدیگر دیگر در اید؟ او تبصم نکرد و من به نقش های کاغذ دیواری نگاه می کردم. های سه گوش نارنجی رنگ سکوت کردم. گفت، آخ، شما میدانید که میل ندارم بحث کنم، اما من اینطور چیزها را نمیتوانم تحمل کنم، نمیتوانم و باید به شما بگویم به هیچ وجه نمیشود، من... گفتم، عروسی های استراری هم وجود دارند، همانطور که قسل تعمید استراری وجود دارد. گفت، بله، این فقط یک جور کلکه و قصد، ماده کبیر. و یا در بیابان و بی علف نیستیم که کشیش وجود نداشته باشد. گفتم: ما هر دو در کویر و در بیابان بیا واللف هستیم و من در این نزدیکی ها کشیشی نمی بینم که ما را به عقد یکدیگر درآورد. چشمانم را بستم چون هنوز به خاطر تازیانه نور چراغ های ماشین درد می کردند. و من خسته بودم خیلی خسته بودم و درد را در دستهایم نیز حس میکردم. مسلس های گوش نارنجی رنگ نقش کاغ دیواری جلوی چشمانم میرخ پرسیدم یا اینکه شما یک کشیش سراخ دارید؟ زیر سیگاری را که روی صندلی جلوی تلفن قرار داشت برداشتم. سیگارم را درون آن خاموش کردم و زیر سیگاری را جلوی او گرفتم. خاک سیگارش را داخل آن ریخت و زیر سیگاری را از دستم گرفت. هرگز در زندگیم تا این حد خسته نبودم. چشمانم دائم به سه سگوش نارنجی رنگ می افتاد به خار فرو می روند. و من از شوهرش متنفر بودم که چنین چیزهایی می خرید چون به نظر او آنها مدرن بودند بهتر از کمی به پدرتان فکر کنید مگر او را دوست ندارید گفتم چرا من او را دوست دارم و امروز خیلی به او فکر کردم و دوباره به یاد پدر افتادم ورا دیدم که با جوهر قرمز رنگ روی کاغذی بزرگ مینوشت با باب حرف بزن ابتدا هدویک را در چشمان صاحب دیدم مثل خطی تیره و تاریک در این چشمان جدی و سمیمی دستش را روی شانم حس کردم ولی رویم را به طرفش بر نفسش را حس کردم و بوی روشی را که به لبک زده بود به مشامم رسید بوی شیرین پمادمان گفتم، معرفی میکنم ایشان خانم بروتیگ و این هم هدویک است. هدویک با او دست داد و وقتی دست های خانوم بروتیگ در دستش قرار داشت، دیدم که دست های هدویک چقدر بزرگ هستند، چقدر سفید و چقدر قدرتمند. همه ما سکوت کردیم و من صدای چکه کردن شیر آبی را در آشبس خانه شنیدم، صدای قدم های مردی را در خیابان شنیدم که مشخص بود تعطیل شده و از سر کار به خانه میرود و من هنوز تبسمی بر لب داشتم میخندیدم بدون اینکه بدانم چگونه لبخن میزنم چون من من خیلی خسته بودم خسته تر از آنکه بتوانم به لبانم حرکتی کوچک بدهم تا حالت لبخن وجود آید خانم بروتیک دوباره زیر سیگاری را رو روی صندلی که تلفن روی آن قرار داشت گذاشت و پیشبندش را کنار آن پرتاب کرد طوری که خاک سیگار به هوا پخش شدند و ذرات ریز خاکستر مانند پودر روی فرش آبی تیر رنگ نشست. سیگار دیگری را با سیگار اولش روشن کرد و گفت: بعضی وقت فراموش میکنم که شما هنوز چقدر جوان هستید اما حالا دیگر بروید و بار بیرون کردن این دختر را از روی دوش من بردارید بروید. رویم را برگرداندم و بازوی هدویک را گرفتم و او را با خود به اتاقم کشیدم. در تاریکی به دنبال کلید ماشینم گشتم. آن را روی میز تحریر پیدا کردم و ما با کفش‌های کثیفمان دوباره از پله‌ها پایین رفتیم. خوشحال بودم که ماشینم را در گاراژ پارک نکرده بودم، بلکه آن را در خیابان گذاشتم. دست چپم تقریبا خشک شده و کمی باد کرده بود و دست راستم به خاطر را برخورد شدید با گوشه سنگ مرمری میز کافه شدیدن درد می کرد خسته بودم و گرسنه دوباره آهسته و آرام به طرف شهر بازگشتم هدویک سکوت کرده بود آینه کوچکش را جلوی صورتش گرفته بود من میدیدم که او در آینه تنها به لبش نگاه می کند. سپس روش لبش را از کیف دستیش بیرون آورد و آهسته و با فشار به لبهایش کشید. هنوز هم خیابان نودل بسته بود وقتی دوباره از جلوی کلیسا گذشته و وارد خیابان نزماخر شدم و سپس داخل خیابان ماخر پیچیدم و جلوی نانوایی و در فضای خالی بین دو ساختمان ماشین را نگاه داشتم هنوز ساعت هشت نشده بود چراغ اتاق هدویک هنوز روشن بود و حرکت ادامه دادم ماشین قرمز شرابی رنگ را دیدم که هنوز جلوی در خانه ایستاده بود دوباره تمام ساختمان ها را دور زدم و مجددا به فاصله بین ساختمان ها در خیابان کربماخر ماخر رفتم. تاریک بود و صدایی به گوش نمی رسید. سکوت کردیم. گرسنگی می آمد و می رفت. می آمد و دوباره از بین می رفت. مثل امواج یک زمین لرزه را در می نفردید. یادم افتاد چکی را که برای ویک و کرده بودم حالا بی محل بود. و پول به اندازه کافی در حسابم نداشتم و به این فکر کردم هدویگ حتی از من نپرسید که شغلم چیست و اینکه اسم کوچکم را هم نمیدانست. درد دستهایم شدیدتر شدید تر شدند و وقتی چشم های درد کشیدم را برای چند ای بستم در دنیای جافدانی پر از مسلس های گوش نارنجی رنگ می چراغ اتاق هدویگ در این روز دوشنبه که هنوز چهار ساعت دیگر آن مانده بود خاموش شد. صدای موتور ماشین قرمز شرابی رنگ دیگر به گوش نمی رسید. حتی خیال می کردم که صدای موتور دل شب را می شکافد و از این سکوت و ظلمت دور می شود. از پله ها بالا رفتیم. درها را آرام باز کرد و بستیم. هدویک یک بار دیگر به لبهایش نگاه کرد. یک بار دیگر به لبانش آهسته و محکم راش لب کشید. گویی هنوز به اندازه کافی قرمز نیستند و من حالا آن چیزی را که در آینده باید بدان پی می بردم، در قبلا هرگز نمی دانستم که در این فناناپذیری چقدر فناپذیر هستم. صدای فریاد بچه ها را می شنیدم. بچه هایی که در بیت المقدس به قدر رسیدند و فریادهایشان با فریاد مرگاور فروگلار عجین می شود. فریادی که هیچکس گوش نداده بود اما اینک به گوش من میرسید نفس شیرهایی که شهیدان را دریده بودند بوییدم چنگالهایشان را مانند خار در گوشت تنم حس میکردم تعم آب نمکدار اقیانوس را می چشیدم قطراتی تلخ از اعماق اقیانوسها به داخل عکسهایی که از قاب خود بیرون می مینگریستم همچون آبی که بر ساحل مینشیند مناظری که هرگز ندیده بودم چهرههایی که هرگز نمیشناختم و من از میان این تصاویر صورت هدویک را میدیدم چهره برولاسکی هلن فرنکل، صورت فروگلار و دوباره از میان این صورتها سیمای هدویک را میدیدم و میدانستم که چهرهاش جاودانی است. من این چهره را باز هم خواهم دید. با دستمالی که چهرهش پشت آن پنهان است. او این دستمال را ناگهان پاره پاره می کند تا سیمایش را به گرومیک دهد. صورت هدوی که من با چشمان خودم اصلا قادر به رؤیتش نبودم چون شب خیلی تاریک بود. اما من برای دیدن صورت او دیگر به چشمایم احتیاجی نداشتم. تصاویر از تاریک خانه بیرون آمدند خودم را می دیدم که مانند قریبه ای روی هدویک خم شده ام حتی نسبت به خودم نیز حسادت می ورزیدم. مردی را می دیدم که سر صحبت را با او باز کرده بود مردی با دندانهای زرد رنگ و با کیف اداره در زیر بقل زارت را می دیدم که چگونه به دوشی زکرونتیک معلم پیانویی که همسایه دیوار به دیوار ما بود لبخند می زند. در تمام این تصاویر. زنی را که در خیابان کوربل بود و عشق میریخت میدیدم و هنوز هم دوشنبه بود و میدانستم که دلم نمیخواهد به جلوگام بردارم دوست داشتم بازگردم نمیدانستم به کجا اما میخواستم بازگردم